اللهم صل على فاطمة وأبيها ابيها و بالها بنيها و المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد وآل محمد و فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم کتاب سیاه دانه دانه ترجمه محقق توانا و حواشی سید حسن ناصری به احتمام هادی کوستانی مطالب ارزنده داره همچنین در فصل دهم ده احادیث مربوط به سیاهدانه رو هم داره پیغمبر اکرم فرمودند سیاهدانه برای هر دردی غیر از مرگ و عجل حتمی شفا و درمانه یک روزی امام صادق علیه السلام در مجلسی بودند که امیر شهر مدینه هم تو اون مجلس بود امیر شهر مدینه از دل درد شکایت کرد بعد حضرت به ایشون فرمود در شربت اصلت سه دانه، 5 دانه یا هفت دانه سیاه دانه رو قرار بده و بخور دل دردت خوب میشه پس پیچش شکمی شکم، بلغری شکمی و ازدیاد نفخ شکم هر سه بیماری غیر عضوی معده و روده خوب میشه این روایت در بهار جلد پنجاه و نه صفحه افتاد و دو اسلام جلد دو صفحه سد سی و مستدر کل جلد 16 صفحه سی جعفریات مسائل علی بن جعفر صفحه دویست و چهار در روایت بعدی اگر کسی بلغمش زیاد شده یعنی مکوس مکوس زیاد شده در درمان بلغم اضافی تو روایات شیعه میفرماید فرماید رومی به اضافه کندر کندر مرغوب خوراکی کندر سفید به اضافه آویشان آبیشن شیرازی یا آبیشن کوهی یا آبیشن زراعی به اضافه نانخاه که میشه هاوم زنیان به اضافه سیاه دانه که حبت سودا اشیونیزه که اقسامی داریم از دمشقی و غیر دمشقی ما اقسام سیاه دونه داریم حالا اینایی که شماردم که تو روایت امام صادق علیه سلامه میگه جدا جدا اینا رو میکوبی پودرش میکنی جدا جدا سپس اینها رو با هم مخلوت میکنی و تو اصل میریزی خوب که ممزود شد هر صبح و هر شب به مقدار یک فندوق از این مخلوط بخور این بلغم اضافی از بین میره یعنی مکوز از بین میره این روایت هم در مستدرک جلد 16 صفحه چاسد چلش به حال علامه مجلسی جلد 59 صفحه دیویست و سه تبول صفحه نوزده روایت بعدی رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودم کسی که دردها رو آفریده دوای اونها رو هم آفریده و برای هر دردی داروی طبیعی در دامن طبیعت قرار داده بهترین داروها سه چیزه یک هجامت دو فست سه سیاهدانه که حبت سوداه که هزار بیماری باش درمان میشه و پزشکی جدید فعلا تا چارصد نوع بیماری را درمان میکنه حجامتان که مؤمن برای تحقیق حجامت و فست به جلد دوم کتاب طب رسول المصطفى آیت الله تبریزیان آقا شیخ عباس تبریزیان مراجعه کنید تقریبا نصف کتاب درباره حجامت و فسته گرم داریم ساعت داریم با زمین باشه بیزمین باشه چی قبلش بخوره چی بعدش بخوره در چه زمان بهترینه در چه حالت بهترینه نقطه های کلیدی بدن مثل ملاج سر مثل بین دوکت، مثل قوس کمر و امانند این این روایتی که اینجا خوندم در مستدرک محدث نوری جلد 16 صفحه 436 به جلد پنجه صفحه سفیه هفتاد الاسلام دعا اسلام جلد دو سفیه سده بعضی آقایون مثل ابراهیم ابن ابی یحیام میگوید نزد امام صادق علیه صلات و السلام از زکام سرماخوردگی توان با آبریزش بینی از زکام شکایت کردم. حضرت امام صادق فرمودن زکام یکی از پدیده های الهیه که خداوند متعال برای ریشکنی بعضی بیماری آفریده از جمله جزام رضا آیت الله تبریزیان جز امراض نافعه میدونه میگه کسی که زکام بگیره جنون نمیگیره و مانند اینها زکام یکی از پدیده های الهیه که خداوند آن را برای ریشهکنی بیماری ها به سوی بدن میفرسته. پس هنگامی که به زکام مبتلا شدی به مقدار یک دانوق، دانق یک ششم وزن درهمه باز تو اوزان بین دانشمندان قدیم و جدید اختلافه مثلا دانق رو دکتر لبیب بیغون تو کتاب طب المعصومین همون صفحات اول کتابش یک جور معنا میکنه باز چند جور معنا از محققین لبنان محسن عقیل تو کتاب العلاج و بالعشاب آخرای کتابش چند صفحه بحث اوزان طبیه یک جور میگه تو بحث فقهی یک ماده دیگه نمی مراجعه کنیم موامنا حالا حضرت میفرماید به مقدار یک دانوق سیاه دانه را با نصف دانق کندور با هم به مثلا به اصطلاح خودمون یک قاشق چایخوری نسک قاشق چایخوری خوب با هم به با هم خردش کن به و از طریق بینی آن را استنشاق کن با عنوان یک صعود یعنی استنشاق با بینی به نوع گرد که این کار زکام رو از بین میبره اما تو بحث خوراکی چی پس به عنوان گرد بخوایم زکام عبدین ببریم مثلا یک قاشق چایخوری سیاه دونه نصف قاشق چایخوری کندر مرغوب خوراکی کندر سفید این دوتا رو خوب خردش می‌کنیم پودرش میکنیم بعد به صورت استنشاق گردی زکام عبدین می‌گیریم یه وقت به صورت بخوام تب نکنم سرما نخورم آبریزش بینی هم پیدا نکنم اصل رقیق شده یه در زمستان و پاییست آبدو خیار یا خیار رنده شده یا مغز خیار ماه بهار و روایت روایات دانیم چیه جان؟ میگه شما مبتلا به زکام در زمستان و پاییز و زکام در تابستان و بهار نمیشه یکی هم رقیق شده یه که گفتم یکی هم قصه که گفتم خدمت شما این تو بحث ها بعد حضرت میفرماید تا آنجا که ممکنه زکامو درمان نکن چون خودش پیشگیری میکنه از بعضی بیماری های و منافع زیادی برای بدن داره مثلا نمیگذاره تجمع مایات اضافی مغزی بگیری یا بافتی بگیری نمیگذاره دوچار جنون بعضی جنون ها هفتا جنون ده. بعضی جنون ها رو نمیگذاره مبتلا بشی و همچین بیماری خوره که بیماری جزامه نمیگذاره مبتلا بشی لازم میگه علکی جلو زکامو نگیر نگی بذار این مایه اضافی بیرون بیار بله میتونی جلو زکام رو ریزش بیش از اندازش رو که دسمال به گردش نمیرسه میتونه بگیریم اون بخور سپند بخور سپند یعنی اسپند رو حرمد این رو توی آب جوش به جوشونی بخارش رو با بینی نفس بکشی آب بینی کم میشه خون از بینی رعاف الدم خون های شدید بینی قط میشه مثلا اگر با قطر چکون که هر بینی دو سه قطر بچکنی رعاف الدم قط میشه حالا این روایت که میگه جلو ز کام رو نگیر بذار این مایعات اضافی خارج بشه و ساید ش چا آل به جل 25 صفحه دو و به هر جلد 59 صفحه۸. چه بل اعمه عل سلام صفحه 64 امام صادق اماام السلام سلام فرمودم سیاهدان دوایی هر دردیه. ف مورد توجه رسول الله صلی الله علیه و سلم و وسلم اللهم صلی علی محمد و علی محمد فرجهم به عنوان حبیبه رسول الله معروف بوده به طوری که هرگاه به اصحاب گفته میشد حبیبه رسول الله را بیاورید می می‌آوردم این روایت هم در بهار جلد 59 صفحه 228 کار مال اخلاق جلد یک صفحه 182 شخصی پیش امام معصوم شکایت کرد از سوزش بیش از اندازی ادرار سوزش بیش از اندازی ادرار به استلال پزشکی جدید اگر کسی آب کم بخوره و یا تعریق بدنش زیاد باشه و یا اینکه پروستاتش باکتریایی باشه. التهاب پروستات. در هر سه مورد سوزش ادرار داره حالا در درمان سوزش بیش از اندازه ادرار چی خوبه؟ سیاهدانه شب قبل از خواب بخوره حضرت فرمود آخر شب سیاهدانه بخور حالا کمل لقی هم موکم بشه خب سیاهدانه با اثر بخور خیلی فوائد داره مت این روایتم که گفتم. در بهار جلد پنجه و صفحه دیویست و بیست و نو مکارمال جلد یک صفحه سده هشتاد و شیش کتاب سیاه دانه دانه صفحه سده شست و روایت هفتم امام صادق علیه السلام فرمودند: در سیاه دانه دوای هر دردیه و من در هنگام سرماخوردگی خوردگی سردرد، چشم درد دلدرد و هر دردی که بر من آرس شود از آن استفاده بهینه می کنم یعنی مصرف دارو به مقدار لازم نوع بیماری مشخص در زمان موز... مناسب در 24 ساعت چه مقدار مصرف کنه یا چند نوبت مصرف کنه تمام مطالب تخصصی در استفاده از دارو رعایت میشه و هر دردی که بر من آرز شود از آن استفاده می کنم خدا به وسیله سیاه‌دانه مرا شفا می در. یعنی این بیماره خاصم خوب میشه دیگه هرگز هم به سراغم نمیاد چون شفا یعنی درمان به گونه ای که احتمال برگشت بیماری هم نیست این روایت هفتم در بهار جلد 59 صفحه 229 و مکارم اخلاق جلد یک صفحه 186. روایت وایت هشتم رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم فرمودن: اللهم محمد و آل محمد اجل شبیه که من پیغمبر اکرم پیغمبر فرمود. شبیه که من پیغمبر اکرم به معراج رفتم از هر گروه از ملائکه که می میگفتند ای محمد امتت را امر به حجامت کن و بهترین چیزهایی که درد امت تو را به وسیله آن مداوا می شود حجامت و سیاهدانه و قاست ایرانیا به قصد میگن کوشنه قاست ف ق س ت دسته قصد از داروهای معروف است که در کتاب قاموس آمده به زم قاف یک نوع چوب و یک نوع عود هندیه ادرار آوره برای کبد و دلپیچه و شکم پیچه و کرم معده داروی معسریه و در کتاب تب و نبی و کجست به یک معنا آمده و بهترین چیزی که به آن می مدابای مداوای ها نمود بلقم را از بین برد مکوس را از بین برد و زکام را برطرف میکند و اگر آشامیده شود برای زعف کبد و زعف معده مفیده و اگر قصد که همون کشنست با آب و اصل آمیخته و به صورت مالیده شود لکهای صورت در طرف می شود از قدیمی ها مثل جالینوس در درمان بیماری کوزاز استفاده می کرده از قسط و کسانی که درد پهلو دارند یا بیماری ذات الجند به قول امروزی یا پلوریت دارن باز از قسط و کوشنه میشه استفاده کرد کسانی که بیماری پوست سر دارند مفیده و کسانی که خارش کل بدن و اگزمای پوستی دارن که گفتیم روغن کشنه یا روغن قص قویترین دارو ضد خارش های پوستی و ضد اگزمای پوستی از این ضعیفتر روغن بنفشی طبیه هست از این دوتا ضعیفتر سرکه طبیعی سیبه که قبلا تذکر دادن خب این روایتی که خوندین در بحار علامه مجلسی جلد پنجه صفحه 300 و طب نبی ابو العباس المستغفری جلد یک صفحه سی محمد, محمد ابن زرائح میگوید به امام صادق علیه السلام ارز کردم در دلم احساس درد میکنم منظورش میدست و درون شکم هم ازدیاد گاز معده دارم دلپیچه ناشی از ازدیاد گاز معده حضرت فرمود چرا از سیاهدانه استفاده نمی کنی که شفای هر دردی قوی ترین دارو در درمان های شیکمی و رودعی چیه؟ سیاه دونه پس میتونه به همراه غذا یا بعد از غذا یا لااقل شب قبل از خواب یه قاشق چایخوری سیاهدونه سیاه به بخوره خواهد گلش نسوزه بعدش میتونه یه سیب درختی یا یه استکان آب سیب بخور یا اینکه به همراه اصل بخوره تصاحب فهم بیدیم؟ تو امن به جایه این روایت هم مؤمنا در مکارم مل اخلاق جلد یک صفحه 186 و تب بل اعمه صفحه 460 چون بحث از این چیزا شد گاهی مؤمنا ازدیاد گاز معده به خاطر وجود بواسیر یا بیماری یوبوسطه دو تا بیماری هم گاهی شخص که قرقراه شکمی داره یا ازدیاد گاز مهده داره یا نفخ رودعی یا یا قرقراه رودعی داره چون یوبوسط مزمن یا حد داره و یا بواسیر داره این سموم فضولات تو بدنش زیاد مونده اتصاع گاز بیشتر میشه تصاحب حالا اگر کسی یوبوست حاد یا مزمن دارد میتونه از ملین ها استفاده کنه مثلا تا سی تا نمشتم. مثلا گلابی کاهو طالبی تره تو بحث بواسیر خونی هم چقدر خوبه انگور اگه با حسش به جای تو بواسیر بادی هم چقدر مفیده که ورم کن گلاب گلبرگ گل محمدی شیر سرد ران مرغ بدون پوست قند برگ سنا به شرطی که حامله بچه شیرده نباشه و به شرطی که کلیت روده و همچنین کلیت زخمی نداشته باشه یعنی روده بزرگ یا کوچیکش ملتهب نباشه زخمی هم نباشه دوازده زنیان به شرطی که حامله بچه شیرده نباشه سیزده برگ کاسنی چهارده گل ختمی چه خبازی چه گل ختمی سفید پونزده سوپ سوپ رقیق با آبگوره واقعا زیتون بخوره شونزده آبگوشت هیفده عبدو خیار هیجده آلو نوزده آلوچه بیست تمهندی بیست و یک خاکشی رو با آب گرم بخور اون وقت مسهله بادام تلخ توت خربوزه توت فرنگی آب آبجوش بلر سبزی خوردن مخلوط اسفناج برگ چگونده تمام اینایی که شمارده اما اینا ملین هاست اما اگر کسی یوبو هاد یا مزمن داره یا بعضی از اقسام بواسیر داره میتونه به این چارده تا عمل یک روغن کرچک دو انگور با هسته آن انگور رسیده با هستش به هم ملین قویه هم ضد بواسیر بادیه چه داخلی چه خارجی چه داخل رود آنال چه خارج رود آنال ابوز سوم هم درد پایین تنش خوب میشه دیگه پماد همراید نمیخواد بزنه سوم مربای انجیر یا شربت انجیر که باقن درست بشه اگر دیابتی نیست با شیره توت درسته اگر دیابتیه چون دیابتی‌ها یبوست هم دارن دیگه از عوارض هشتگانه بیماری غده هم یبوست مزمن حالا این انجیر یا مربا یا شربتشو ها با شیره توت بخوره یا درست کنه چهارم یک استکان گلاب طبیعی مثلا قمسر کاشان به اضافه یک قاشق چایخوری پودره گلبرگ گل محمدی به اضافه یک قاشق پلوخوری شیره توت استتام یک مسهل بسیار قویه و چند خوبی برای افراد داره هم پوست بدنشون هم عرقشون خوشبو میشه هم مدفوعشون از بدبوی در میاد مخصوصا کسانی که دیابتیان از دو چیز خیلی ناراحتن یکی از بوی بد دهان یکی از بوی بد مدفوع آش به جون معصومین کنید که ظاهر و باطنشون خوشبوه و گل سرسرد هستی هم. پس اینجا گلبرگ گل محمدی به اضافه گلاب به اضافه شیره توت این سه با یک دیگر مخلوط شدم و میل گردن هنجام کاهو به همراه قضا یا توت میان وعده غذایی بین روز یا عصرونه یه مش توت بخوره یا توت خشک یا توت تازه فرق نمیکنه میتونه با شیره توت هم بخوره کاهور اگر با شیره توت بخوره مصحله بسیار قویه شیشم شیره انگور با شیره توت بخوره این دوتا رو با هم هفتهم فلوس سه تا ده سانتیمت که جدا کنه و داخلش با قاشق خالی کنه بیزه تو استکان توش آبجوش جوش بریزه دقیقه ده دیگه کنه هم بزنه بخوره فلوس یه هیه هشتون. اگر حامله نیست زن فرقی نمی کنه. حالا تو خانوما اگر حامله نیست و بچه شیرده نیست مخلوط برگ سنا برگ کاسنی گل ختمی سفید گل ختمی خبازی به نسبت مساوی ای ستارو پود کنه قاطی یه قاشون مرب بخوری از این مخلود با یه لیوان آب بخوری اگر حامل هست یا بچه شیرده هست خانومی برگ سناش حس میکنی به جاش گل برگ گل محمدی گلبرگ گل محمدی برگ کاسنی گل ختمی سفید گل ختمی خبازی یه قاشون مرب بخوری با یه لیوان آب میخوری مطلب نهم تو مسهل های قوی روزی دو موش میوه گیلاس میوه گیلاس بخور روزی دو مش وسط روز اصرونه مسل قویه اگر آدم های عادی بخورن اصحال استفراغ میگیرن مخصوصا بچه ها اگر گیلاس یکم یک بیشتر بخورن اصحال استفراغ میگیرن مطلب یازده هم, یازده هم زنیان با مغز گردو هم ضد یوبوست مزمنه هم درمان بواسیر دگمهی و سجمهی میکنه که فرمایشات امام رضا علیه السلام تو رساله زنیان با مغز گردو نانخواه الجوز دوازده کسانی که بیماری دیابت دارن سبزی خرفه بامیه گلبرگ گل محمدی بادام تلخ عرق کلپوره هم پونزه پونزه پونزه پونزه تا قندشون میاد پایین تو بامیه و خرفه و بادام تلخ و عرق کلپوره و هم مومن ها یکی از خوبی چیه؟ این مسهلند در غیر دیابتی ها اما در دیابتی ها میشن ملین حال اگر دو دومش سبزی خرفه بخوره میشه مسهل حتی برای دیابتی و نیازشو به انسولین تزریقی اب میبره کم کم خود دکتر میگه دیگه نمیخواد انسولین تزریقی بزنی چه کریستالی چه شیری رنگ مطلب سیزده هم. از قرصه متفورمین و گلامین اینا هم بینیاز میشه مطلب سیزده در بیماران قلبی کاهو با کرفس هم یوبستت مزمنشون خوب میشه مسهله قویه هم برای گرفتگی عروغ کرانر قلبشون خوبه رقای کرانر قلب رو باز میکن همچنین تقویت قلب و تقویت اعصاب گلاب به اضافه بیدمش به اضافه اعصاب یک استکان یا نصف استکان گلاب طبیعی به اضافه نصف استکان عرق بیدمش طبیعی به صفيه قشا فولخولی عسل آویشان نعنا هم مقوی اعصاب ضعیفشونه هم مقوی قلب مسلم هست تساب فرمودین مؤمنان اللهم صل علی محمد و علی محمد, محمد